در صفحه و پنج تصویری از بنای مشهور به کعبه زرتشت در نقش رستم وجود دارد و همچنین در صفحه و شش تصویری از دخمه یا دادگاه برج خاموشان و بر فراز تپه ساختمان دامنه تپه برای اقامت زائران است به نام خیده صفحه و هفت فصل سوم از آغاز اسلام تا دوره معاصر پس از دوران ساسانیان کش زرتشتی به نیمه دوم عمر خود پای می نهد. امروزه صورت باستانی و اسیل آین زرتشتی را از گزار آثار و نوشته هایی می شناسیم که بخش مهمی از آنها در قرن سوم هجری و قرن نهم میلادی به نگارش تر آمده و یا بازنگاری شده است در این کتاب ها آثاری جزئی نیز بر جای مانده است که اشاراتی است ناچیز اما مهم درباره حیات اجتماعی زرتشتیان در دوران خیش گواهی های تاریخ در این باره اندک است و ناگزیر باید بر همین آگاهی اندک تکیه کرد نظرگاه دو بچه اکثریت مسلمانان ایرانی و سپس ارتباط جامعه ایرانیان زرتشتی با پارسیان هند در زندگانی این اقلیت نقش و تأثیر کامل داشته است 1. ادبیات زرتشتی در قرن سوم هجری. هیچ کتاب و نوشته مستقلی از قدیم درباره جامعه زرتشتی ایرانی در دوران اسلامی بر جای نمانده است. از خلال کتاب های گوناگون می شود اطلاعاتی به و دست آورد همچنین کتاب های دینی بازمانده و نیز نسخه های خطی های مختصری در بردارند که می شود آنها را یافت و درباره ارتباطی که با تاریخ جامعه زرتشتی دارند، افتگو کرد تعیین تاریخ تعلیف کتابهای پهلوی موجود در روشن کردن تاریخ جامعه زرتشتی اهمیت وافر دارد به گواهی خود متن و بنابر شواهد درونی آنها برخی از این کتابها در دوران پیش از اسلام نوشته شدهاند و اغلب آنها در قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری هیر بدستان و نیرنگستان مادیان هزاردادستان که کتاب حقوقی دوران ساسانیست شایست ناشایست کتاب فقهی زنده فرگرد وندیداد و همچنین بخش اصلی ترجمه و تفسیر اوستا را از گروه نخستین باید دانست در برخی از کتاب کتاب‌ها صراحتا از اسلام یاد شده است مثل روایات امیدا شوهی و گزارش گمان چکن یا قصه کوتاه بهرام ورجاوند که شعر است از این میان نامه منوچهر تاریخ دویست و پنجاه یزدگردی 881 میلادی دارد و دادستان دینی از همین نویسنده و برادرش زادسپرم نویسنده کتاب گزیده‌های های زادسپرم است. دینگرد نیز در همین اوان به نگارش در آمده است. تفزلی 1376، صفحات 128 تا 131 و بازنگاری کتاب بندهش به همین روزگار باز می‌گردد. بدین شمار بخش مهمی از این آثار در قرن سوم سو و اوایل قرن چهارم هجری نوشته یا بازنگاری شده است. در این دوران هایی در کار بوده است. آزر فرنبق، پسر فررخزاد، پیشوای بزرگ زرتشتیان، یکی از تدوین کنندگان دین کرد در قرن سوم هجری در زمان معمون خلیفه عباسی 198 تا 218 عمری مبدان مبد فارسی بود است وی در حضور این خلیفه با زرتشتی مسلمان شده ای به نام عبدالله مناظره کرده و شرح این مناظره در رساله پهلوی گجستگ عبالیش آمد است تفضلی 1376 صفحه 129 و صفحات 164 تا 166 زرتشت پسر آزرفرنبق به مصیبتی دوچار شد که چگونگی آن روشن نیست. در گزارش گمانشکن هم به چونین جدلی برمی همچنین در رساله علمای اسلام که دارای تاریخ ششتنده است ازدگردیست. روایات دارا به هرمزدیار صفحه هشتاد و قبل و پس از آن. این قبیل گفتگوها را طبعاً میتوان تا حوادثی دنبال کرد که نمونه آن در قتل موبدی به نام اسفندیار پسر آذرباد پسر انمید در سال 325 قمری برابر با 936 میلادی دیده میشود این اسفندیار شاید پسر آذرباد ایمیدان تدوین کننده دینکرد بوده باشد تفضلی 1376 صفحه 130 این گونه حوادث و دلشکستگی را اشاراتی در خود کتاب پهلوی و نیز اخبار تاریخی در کتاب فارسی و عربی تایید می کند مثال آن را در مقدمه بندهش می شود دید و یا در شکوایه بهرام ورجاوند اصولا اوج و رونق گرفتن ادبیات بدزمانگی که نابسامانی این زمانه حاضر راور می و امید به نجات در آینده را نقش میزند و در زند بهمن یزن و روایت گوناگون آن و جاماسپ نامه ها می شود یافت همه بازگوی زمانه تلخ و دشوار است از, از این نوشته هایی که با آثار قرن سوم هجری و نهم میلادی شهرت دارند زبان پهلوی گرچه از اوج خود فرو افتاد ولی در خاندان مبدان هنوز زنده بود در مقدمه زرتشت، نامه منصوب به زرتشت بهرام پژدو قرن هفتم هجری آمده است که خطو زبان پهلوی را کمتر کسی میداند مزداپور 1371 صفحه 335 باداوری از روی بنوشت دست نویس دال 90 مزداپور 1371 صفحات 336 و 337 و نسخه اوستای کتابت فریدون مرزبان کتابت در سال 976 یزدگردی مزداپور 1381 می گفت که اولا تا قرن نهم هجری موبدی چون دستور هوشنگ سیا بخش پهلوی را زیبا و روان و رسا می است سانیان در قرن دهم ده نه تنها با نوشته پهلوی دست نویس با زبانی زنده و متداول گرچه متحول و تازه نوشته شده است بلکه پرنوشت های پهلوی کتاب با چندین علم مختلف بر متن عبستانشان نشان می‌دهد که موبدان تا آن زمان و چندی پس از آن هم هنوز ارتباط جدی با آموزش زبان پهلوی داشتند فقط در قرون اخیر بود که این ارتباط جای خود را به آموختن و نوشتن فارسی و خط فارسی عربی آن داد به طور سنتی پس از اوستای بایسته روزانه که در آغاز کتاب خورده اوستا می آید به زبانی متأخرتر از زبان اوستایی نیایش هایی هست که معنای آنها تقریبا فهمیده می شود زبان برخی از این نیایش ها قدیمی تر است روشن نیست که آیا از همان اواخر دوران ساسانیان ترتیب و ترکیبی از همین دست میان این ادعاها برقرار شده بوده است یا نه اما نیایش های جدید دیگری نیز امروزه افزون بر دنباله ثابت عوضای بایسته هست که به میل و سلیقه هر کس و هر خانواده یا مدرسه انتخاب می شود و زبانی تازه تر دارد مثل مناجات ها که اصولا به شعر فارسی است. به نظر می رسد که این قبیل نیایش ها را پس از فراموش گشتن زبان پهلوی در کاربرد روزانه به زبان مفهوم و زنده زمان ساخته و پرداختند. سپس با گذشت زمانی اندک به نامفهوم شدن گرایش یافته ولی بر جای مانده است. این سلسله از نیایش ها نشان نشان‌دهنده سنتی دیرنده است که در طی زمان چون آینه باورها و عقاید قلبی گروندگان را باز می‌نمایاند. هرکس چیزی بر آن افزوده و زبان آنها دارای گناههای رنگارنگ و قابل بحث و بررسی است. این ها در واقع در حد واسطی میان فارسی زرتشتی و پهلوی قرار می‌گیرند و بخش مهمی از آنها در مجموعه پازند آنتیا آمده است. نمونه‌های چشمگیر و بسیار متأخر آنها پتت ایرانی و افسون شاه فریدون است. این دعاها در چاپ‌های کنونی اوستا متفاوت است. در قدیم مفصل‌تر بوده بود است مثل جمله خورده اوستا 1270 یزد گردی و اکنون بسیاری از آنها در چابهای تازه اصلا حذف می گردند. زبان این نیایش ها است و با فارسی زرتشتی یکی نیست فقط برخی از آنها مانند مناجات بهرام راوری را می با فارسی رسمی نزدیک شمرد فارسی زرتشتی گونه‌ای خاص از زبان فارسی دری آموزگار 1348 در زبان فارسی زرتشتی های خاصی هست که به فرهنگ و آینه زرتشتی باز می‌گردد. مانند یزمشان و فرارون. گرچه نشانهایی از تأثیر گویش و هم همزبان پهلویگاهی در آن پدیدار می شود ولی اصولا شباهت تام با فارسی دری دارد از آثار چاپ شده مهم فارسی زرتشتی باید صد در نصر و صد در بندهش روایات داراب هرمزیار و البته زرتشت نامه منصوب به زرتشت بهرام پجدو و ارداوی نامه های فارسی و جاماسپ نامه ها را ذکر کرد بخش مهمی از این آثار به صورت چاپ نشده در کتابخانه‌های هندوستان و اروپا و نیز ایران در سر و سر جهان پراکنده است. دو، محدود شدن جامعه زرتشتی هیچ کدام از این نوشته ها شرحی روشن و مستقل که بتوان آن را تاریخ خاص جامعه زرتشتی به شمار آورد دربر ندارند و بیشتر نیایشند و احکام دینی و فقهی زرتشتی از نیایش های روزانه که بگذریم این نوشته ها را به یک تعبیر موبدان برای موبدان به نگارش در و در زمینه آموزش های دینی و است. فقط از خلال آنهاست که میتوان گاهی شرایط اجتماعی و اقتصادی و وقایع را استنباط کرد با توجه به اینکه اکنون از تاریخ برافتادن حکومت دینی ساسانیان بیش از 1300 سال میگذرد دین زرتشتی بخش بزرگی از عمر خیش را در این دوران گذرانیده است برای اطلاع از این قرون متمادی فقط آگاهیهایی پراکنده در گوشه و کنار بر جای مانده است. میزان این اخبار و آثار در برابر آنچه از نوشته های مربوط به دوران پیش از اسلام به دست می‌آید اندک است. با توجه به اینکه همان اخبار و اطلاعات نیز بسیار کم و نارساست باید گفت که از دوران دوم زندگانی جامعه زرتشتی و تاریخ آن تقریبا هیچ نمی‌دانیم. کتاب های فارسی و عربی و نیز اسناد و مدارک گوناگون تاریخی را گرچه پژوهندگان از این نظرگاه بررسی کردند باز میتوان انتظار داشت که از روی همین منابع موجود با دقت بیشتر دیگر گوشه تازه از تاریخ این جامعه روشن گردد. به نظر می رسد که اسناد تاریخی در این باب سگونند. نخواستانهایی که به علتی به شرح کوتاه یا بلندتری درباره زرتشتیان پرداختند. ماننده تاریخ سیستان و فردوس المرشدیه و یا اتفاقا اشاراتی به زرتشتیان دارند. ماننده رستم التواریخ گروه دوم آثار سیاهان خارجیند که شرحی در این باب نوشتند مانند سفرنامه تاورنیه و سفرنامه شاردن گروه سوم آثار خود زرتشتیانند که آگاهی و اطلاعی درباره تاریخ می‌دهند و یا شرحی می‌آورند که از آن می‌شוב درباره جامعه زرتشتی چیزی استنباط کرد مثل روایات دارا به با روی کار آمدن تاهریان دویست پنج تا دویست و و قمری دولت مسلمانی در ایران پا گرفت که زمن آنکه که تلیعه استقلال ایران بود خیال تجدید دولت ساسانی و احیای آین زرتوشتی در سر نداشت. زرین کوب 1330 صفحه 299 با وجود این چون زرتشتیان اهل کتاب به شمار می آمدند با دادن جزیه و پذیرفتن شرایط متیال اسلام بودن می توانستند بر آین نیاکانی باقی بمانند از آن پس زرتشتیان می بایست به دفاع از خیش بکوشند در مجالسی که در حضور معمون عباسی تشکیل می پیشوایان همه مذاهب و فلسفه های زمانه از جمله کسانی ماننده آزرفرنبغ پیشوای زرتشتیان و یه بخت پیشوای مانویان حاضر گشتند اخباری گوناگون از مناظره های مزبور در دست است زرین کوب 1330 صفحات 328 تا 330 در کتاب کوچک پهلوی به نام گجستک عبالیش و نیز در رساله علمای اسلام که به زبان فارسی است این قبیل مناظره ها دیده می شود حتی در دوران ناصر الدین شاه باقبان زرتشتی او به نام نوشیروان بهمرد نوش درباره رفع اتهام خورشیدپرستی پرستی بهتینان با شخص شاه گفتگو کرده است نقل از قول شفاهی خانم پریدخت مرادپور. تاریخ سیستان میگوید که در حدود سال 651 میلادی پانزده سال پس از فتح ایران هنگام آمدن عرب به آن ناحیه سردار محلی سیستان و موبدان موبدان ناحیه با فرمانده عرب ربی ابن زید قرارداد صلح بست و پرداخت خراج و جزیه را متقبل شد در پی پا شدن چیرگی تازیان این امر در سراسر سر ایران واقع گشت ویس 1377 صفحات 234 تا 238 از آن پس کوشش کردند تا آتشکده‌ها را خاموش کنند و یکی از نخستین آتشکده‌هایی که خاموش شد کاریان نزدیک دارابگرد فارس بود کلیفورد باسورث 1370 صفحه 57 های صلحی که توام با پرداخت خراج و جزیه سنگین بود، کمک کرد که زرتشتیان بتوانند آئین و مراکز پرستش خود را حفظ نمایند، چنانکه مثلا آتشکده کرکويه تا چند قرن بعد در سیستان در احترام و امنیت برقرار بود. وایس 1377، صفحه 236، کلیفورد باسورز 1370، صفحات 86 و 87. از جزئیات امر اخبار ناچیزی در دست است، مثلا اینکه در حدود سال 150 قمری 767 میلادی دو مرد زرتشتی به نامهای آزرویه مجوسی و مرزبان مجوسی در شورشی در سیستان فرمانده بودند کلیفورد باسورس 1370 صفحه 1724. و یا در بخارا استقرار اسلام با دشواری صورت گرفت بایس 1377 صفحه 237 با سلطه عرب عموم ایرانیان دریافتند که مسلحت آنان در پذیرفتن دینه تازه است در مقدمه بندهش به این نکته اشاره شده است بندهش 1369 صفحه 31 جوز بهره گرفتن از مزایای حقوقی و تصاحب ارث کل خاندان، یافتن مقام و مناسب، توفیق در بازرگانی، حمایت علمی و ادبی، مسون ماندن از تعقیب و توهین و نجات از فقر از این راه میسر میشد. با وجود این در زمان حکومت امویان هنوز در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها اکثرا مردم زرتشتی بودند. پیشرفت اسلام در نواهی مختلف یکسان نبود. بویس 1377، صفحه 237. در اواسط سده 3 هجری هنوز آزرگوش در شیز آذربایجان روشن بود. بویس 1377، صفحه 243. در قرن چهارم و 5 هجری حاکم کازرون مردی زرتشتی بود به نام خورشید که از او به نام دیلم گبر یاد کردند. فریتز مایر 1333 در فردوس المرشدیه صفحه 22 و 33 و 34 گذشت که در دوران نگارش آثار قرن سوم هجری در اوایل دوره عباسیان زرتشتیان فاضل به مناظره و بحث با علمای مسلمان می نشستند بویس 1377 صفحه 239 اما گفتند که امیر عبدالله تاهر بنیانگذار سلسله تاهریان فرمان به سوزاندن و نابودی نوشته های زرتشتی داد بویس 1377 صفحه 241 حتی اگر این قول تماما درست نباشد، گرایشی روشن به این امر را نشان میدهد. موبدان زرتشتی که اسلام می‌آوردند، به ویژه در این راه میکوشیدند تا ایمان خود را در دین تازه به چشم مردم بکشند. بویس 1377 صفحه 245 البته در یادها مانده است که تا یک قرن پیش هم هنوز یکی از سراح گرفتن جزیه همین بوده است، پول نقد بیگاری و دادن کتاب برای سوزاندن در دوره عباسیان فشار بر زرتشتیان برای دست کشیدن از دین نیاکان فوزونی میگرفت وایس 1377 صفحه 242 مقررات دولتی که با احکام محلی تشدید میشد، نه تنها اموال بلکه افراد زرتشتی را هم از این جامعه میگرفت. کیش زرتشت ظاهراً بیش از همه در فارس مقاومت کرد بایس 1377 صفحه 243 سپس با آمدن مقال به ایران و آشوب و قوقای آن زرتشین صدمه بیشتری خوردند. مقالان در قرن هفتم آتش کده کرکویه را در سیستان ویران کردند. بایس 1377 صفحه 244 در برابر این سیل خاروشان زرتشتیان راهی جزگریز به بیابان و کوه و دور ماندن از معرض دید نداشتند چون این نقاطی را در اطراف شهرهای کویری یزد و کرمان یافتند با منابع اندک آب و ناپذیرندگی میهمانان بیگانه در این سختی معیشت لابود با های بسیار در تاریخی نامعلوم موبدان موبد فارس با دیگر موبدان و شاید همکیشان دیگر و به اصطلاح عامه خود به آنجا پناه برد دو روستای کوچک آباد و ترک‌آباد در انتهای شمال دشت یزد در دورترین فاصله از شهر که حاکم مسلمان در آنجا ساکن بود پناه گزید بویس 1377 صفحه 244 بخش مهمی از پاسخهای پرسشهای دینی پارسیان هندوستان و نیز کتابت نسخه های پهلوی و اوستا از موبدان شریف‌آباد و ترک آباد است. آخرین موبد از اینان شادروان دستور رستم جمشیدی کلانتری در سال 1380 به درود حیات گفت. کس از دوران مغال زرتوشتیان دیگر بناهای بلندی را پی نیافکندند و آتشهای مقدس به درون اتاقک هایی هرچه محققر تر نقل شد. بایس 1377 صفحه 244 نخستین گزارشی که مسافران و سیاحان اروپایی به قرب آوردند و خبر از بودن تنی چند از پیروان مذهب کوهن ایرانیان دادند مربوط به زرتشتیان یزد و آتشکده شریفاباد بود. در سال 1604 میلادی دیگر زرتشتیان ساکن شمال و شرق ایران یعنی خراسان و سیستان به کرمان نزد همکیشان خود پناهنده شدند. بویس 1377 صفحه 245 با وجود این، شرحی درباره بهدینان دینان جوامع کوچک زرتشتی در نقاتی که فعلا دیگر زرتشتی نشین نیستند، در یادها هست. مزداپور 1374، صفحات 42 تا 44. شماری که جماعت زرتشتی از یک میلیون نفر در عهد شاه عباس صفوی، آغاز قرن 18 مسیحی به 50 هزار نفر در زمان فتحعلیشاه و 30 هزار نفر در زمان محمدشاه قاجار رسید و در 12285 قمری به 6900 نفر تقلیل یافت. امینی 1380، صفحه 308 در روایات داراب هرمزیار از بهدینان سمرقند جلد یکم صفحه 103 و نیز در ای با تاریخ 928 یزدگردی برابر با 966 قمری از دستوران سیستان و بهدینان خراسان جلد دوم صفحه 461 یاد می شود. در قرن هفته همه مسیحی در شهر قندهار افغانستان سیاهی اروپایی با تعداد بسیاری زرتشتی برخورد کرده است که در فقر و تنگ دستی بودند بویس 1377 صفحه 246 این پرسش پیش می آید که آیا خانواده های هزاری کنونی که زرتوشتی با اینان نسبتی دارند؟ شاردن فرانسوی از بودن زرتشتیانی در مناطق روستایی ایرانی مرکزی و جنوبی گزارش می‌دهد همچنین می‌گوید که شاه صفوی در 1608 میلادی در حومه اسفهان گروهی از آنان را ساکن کرد و یک سالی در آنجا در آسودگی زیستند وی از یک مرکز بازرگانی بزرگ در چهار فرسنگی اسفهان سخن میگوید که تمام جمعیت آن زرتشتی بودند اینان بیشتر به تجارت کشمش میپرداختند و محصولات جانبی تاکستانها و باغهای انگور بویس 1377 صفحه 246 بدین شمار تا عهد صفویه در اسفهان نیز بهدینان دینان میزیستند زرتشتیان اسفهان به ویژه به یزد رفتند و سده اسفهان در ده خورمشا ساکن گشتند. اطلاع شفایی در قتل عام اسفهان در سال 1699 میلادی بیژن رستم و پنج برادرش از تیغ شاه سلطان حسین توانستند بگریزند و به یزد رسیدند. آنان چندی در خورم شاه ماندند و یکی از برادران نیای خاندان جاویزیان و جاویدان در آنجا ساکن شد. اما بیژن و برادران دیگرش به محمدآباد رفتند و در آنجا ماندگار گشتند. خاندان بهبودی از همان موبدان اصفهانی‌اند که در تفته یزد سکونت گزیدند. جمعی دیگر از زرتشتیان گریزان از آن قتل عام اصفهان تا کرمان شتافتند و آنجا پناه بردند. یادهایی پرکنده از زرتشتیان ساکن مناطق دیگر در دست است. ماننده هایی از وجود آنان در دهاتی نزدیک ابرقو یا در راه آن که شیرین خداداد بهرام خسرویان آن را از قول پدر خود نقل می کرد که در سفر به آنها برخورده است، اطلاع شفایی. نکته این است که در هر کجا چون این گروه های کوچکی از میان می رفت، هیچ گونه نشانه و اثری و یادی از آنها و ستمی که بر آنان رفته است بر جای نمی ماند. دو جماعت زرتشتی ساکن یزد و کرمان با یکدیگر ارتباط داشتند. از دیرباز آثاری از این ارتباط در دست است. کاروانهایی که میان دو شهر همواره در رفت و آمد بوده است، مهاجرت هایی که به ویژه از یزد به کرمان صورت میگرفته است انواع روابط از جمله داد و ستد و بازرگانی، رد و بدل آرای جمعی در امور همگانی، مشاورتهای دینی و فقهی و در نهایت ازدواج و خویشاوندی را در پی داشته است. نیاگ بزرگ خاندان سروشیان کرمانی به نام جمع از یزد به آن شهر مهاجرت کرده است. مردم جوپاره کرمان مشهور است که اصولا یزدی بودند و کرمانی اصیل نیستند نقل قول از آقای سیروس رهنمون و خرامشاهی است به ویژه با کرمان ارتباط بیشتری داشته است شادروان اسفندیار کرمانی که به اسفندیار دلاک معروف بود افسون بر مشاقل دیگر خود سلمانی دورگردی هم بود که هجامت هم میکرد. در حدود سال 1326 خورشیدی برای کار و همچنین دیدار از خیشان و دوستان از کرمان به یزد می آمد این گونه میهمانان همواره از این شهر به شهر دیگر می رفتند و به ویژه در گاهنبارها و مراسم دینی شرکت می جستند شرح تلخی که در کتاب فردوس و المرشدیه از ارتباط تند و خشن شیخ ابو اسحاق کازرونی با خیشاوندان آتش پرست و گبرش میخوانیم در حقیقت دو وجهی و مبهم است وی که پدر زرتشتی بود خود حاضر نشد از آبی بنوشد که از جوی آورده بودند که خورشید گبر آن را کنده بود فردوس المرشدی صفحات 99 و 100 در این حال هنگامی که گبران به سوی او تیرانداختند وی از خون آنان درگذشت و مقابله به مثل نکرد فردوس المردیه صفحات 379 و 380 در این حال در همان کتاب صفحه 107 آمده است که در پی شایعه قتل شیخ به دست گبران هنوز شب نیامده آمده بود که ده هزار مرد مسلمان از رستاق و شابور و کوهستان در رباط شیخ حاضر شدند دیلمی یعنی دیلم مجوسی و خورشید که شهنه کازرون بود و لشکر ویور رؤسای مجوسیان چون آن لشکر بدیدند بترسیدند و در خانه ها پنهان شدند مسلمانان برفتند و خانه های ایشان بسوزانیدند و خراج از دیار برگرفتند و گبران آجس شدند و بسیار از ایشان مسلمان شدند امام ابو جعفر انساری رحمت الله علیه گفت آن روز هفت تن از گبران مسلمان شدند و همچنان مسلمانان گرد ایشان برآمده بودند که ایشان را هلاک کنند که شخصی خبر به شیخ رساند و با بازگشت وی به کازرون مسلمانان چون شیخ را بدیدند خرم گردیدند و دست از گبران بداشتند و احوال با خدمت شیخ بگفتند شیخ گفت الخیروفی ما یغزی الله شیخ ابو اسحاق که در سیرت او مستور است که 24 هزار کس از گبران و آتش پرستان و جهودان به دست او مسلمان شده بودند فردوسل مرشدی صفحه بیست و فریاد میزد که دشمن آن گبر و جمله گبران منم فردوسل مرشدی صفحه صد خود نمونه درخشان اخلاق و رفتار نیکو بود فردوس المرشدیه صفحات 107 و هفت تا سد در واقع این را تکلیف خیش می دانست که دیگران را به کیش اسلام درآورد اما در هنگامی که ستمی بر کافران هم می رفت اعتراضی نداشت و می گفت الخیروفی ما الله این اسکوت که رضایی هم در آن هست و نیز مجازات‌های سبک برای سوء قصد به جان و مال و ناموس نامسلمانان هموار دست اوباش و عرازل را بر ضد آنان گذارده است و مردم مؤمن صادقانه چون این ظلمی را چندان سنگین نیافتند نمونه آن را در شعر سعدی بزرگ می‌خوانیم که در کتاب‌های مدرسی هم آمده است ای کریمی که از خزانه قیب گبر و ترسا وظیفه خورداری دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری؟ نکته در این است که نه تنها این گونه و به ویژه کم بودن میزان دیه برای اهل ذمه در مورد زرتشتیان امنیت آنان را همواره به خطر انداخته است بلکه به رقم قوانین درست اسلامی با پرداخت جزیه قانونی هم باز دست تعدیه ستمگران در زورگویی بر آنان باز مانده است. شه مردان 1363 صفحات 546 تا 548 در این حال ادب فارسی افزون بر شاهنامه در داستانهایی چون ویس و رامین و سمک ایار و خسرو و شیرین و همای و همایون گذشته ایران را چونان خاطره دور گرامی می دارد. این خاطره پرهرمت با زرتشتیان در پیوند است و نیز نه تنها فرهنگ فارسی به هر تعبیر و هر استعاره که باشد پیر مغان را بزرگ مغان، پیشوای دین زرتشتی، رهبان دیر، ریش ریش سفید میکده پیر میفروش رند پیر طریقت در تصوف معنی میکند بلکه این اصطلاحات به هر تقدیر در شعر فارسی به کار می رود